دوباره دست ولف روی شاننم قرار گرفت و احساس کردم که از روی رکاب ماشین بلند شدم و به سوی ماشینم که آن طرف خیابان پارک شده بود میروم و از بیرون از میان شیشه جلوی ماشین به جایی نگاه میکنم که هدویک نشسته بود ولی آنجا کسی نبود. ولف گفت: «چی شده؟ با خانم فلین چیکار داری؟ او خیلی در هم ریخت است. سکوت کردم. دستش را از روی شانم برداشت. از جلوی ماشینم رد شدیم و به خیابان کرب ماخر رفتیم. ولف گفت. او به من تلفن زد. صدایش ناراحت کننده بود. طوری که باعث شد بلافاصله فاصله خودم را به اینجا برسانم. لحن صدایش به ای بود که به ماشین های لباسوی نمی مربوط باشد. جلوتر از او وارد خیابان کرب ماخر شدم. جایی که یک کافه کوچک را می زن جوانی همان موقع نانها را از یک کیسه پارشه سفید داخل ویترین میریخت. نانهای کوچک جلوی شیشه ویترین روی هم قرار گرفته بودند و من میتوانستم برامدگی صاف و قهوهی رنگ آنها را ببینم. لایه یه ترد آنها و قسمت سفید روشن رویشان که نانوها قاش زده بودند. وقتی زن جوان به مغازه برگشت نانهای کوچک هنوز روی هم سر میخوردند و برای یک لحظه، نانهای کوچک به نظرم مثل ماهیهای بیرمق و پهنی آمدند که در یک آکواریوم روی هم جمع شدند. ولف گفت: اینجا؟ گفتم: بله، اینجا. او در حالی که سرش را تکان میداد جلو رفت. اما وقتی او را از جلوی پیشخامه طرف اتاقی کوچک خالی بود هدایت کردم، لبخند زد. وقتی می نشست گفت: جای بدی هم نیست گفتم نه اصلا بد نیست گفت اوه فقط است که انسان تماشایت کند تا متوجه شود که چه حال روزی داری پرسیدم مگر چه اتفاقی افتاده است نیشخند زنان گفت اوه هیچی نیست فقط مثل کسی به نظر میرسی که گویی دست به خودکشی زده است میبینم که امروز نمی شود زیاد روی تو حساب کرد زن جوان قهوه‌ای را که ولف جلوی مغازه سفارش داده بود آورد. ولف گفت: پدر عصبانی است. تمام زور تلفن زنگ میزد، اما هیچ کجا نمیشد پیدایت کرد. اصلا قابل دسترسی نبودی. حتی با آن ای که به خانم بروتیک داده بودی هم تماس گرفتیم. و ادامه داد: او خیلی عصبانی است. بیش از این ناراحتش نکن. میدانی که در مورد مسائل کاری شوخی سرش نمیشود. گفتم نه در کار شوخی سرش نمی شود از قهوه را نوشیدم از جایم برخواستم به مغازه رفتم و از خانم جوان سه عدد نان کوچک گرفتم او به من یک بشقاب داد وقتی خواست به من یک چاقو هم بدهد سرم را به علامت نفی تکان دادم نانهای کوچک را توی بشقاب گذاشتم به اتاق برگشتم نشستم و انگوشتان شستم را وسط شکاف سفید نان فرو بردم و آن را به دو نیم تقسیم نمودم وقتی اولین تکه را خوردم احساس کردم که چگونه حالت تحوه در وجودم فروکش کرد ورف گفت خدای من احتیاجی نیست که نان خالی بخوری گفتم نه اصلا احتیاجی نیست گفت نمیشود با تو یک کلام حرف زد گفتم نه با من نمی صحبت کرد. برو. گفت. باشه. شاید فردا دوباره به حالت طبیعید برگشته باشی. خندید و از جایش برخواست و خانم جوان را صدا زد. دو فنجان قهوه و سه عدد نان را حساب کرد. وقتی به خانم جوان 20 فینیک انعام داد، خانم جوان لبخندی زد و هر دو سکه ی فینیکی را دوباره کف دست تمیز و فعال وولف گذاشت. او هم سرش را تکان داد و دو تا دهفینیکی را توی کیف پولش گذاشت. نان دوم را هم نصف کردم و نگاه وولف را کردم که چگونه به گردن به موهایم و در امتداد چینهای صورتم به دستانم زده بود. گفت در زمن آن برنامه هم ردیف شد. با بیخبری سرم را به طرف او بالا گرفتم. اولا دیروز چیزی از قرارداد برای تریتونیا نگفته است؟ آرامی گفتم چرا دیروز از آن برایان تعریف کرده است ولف با خوشحالی گفت موفق شدیم قرارداد را بگیریم امروز صبح مبلغ قرارداد مشخص شده است امیدوارم وقتی روز جمعه کار را شروع میکنیم عقب تو هم سر جایش آمده باشد به پدر چه بگویم؟ اصلا چی میتونم به او بگم؟ بعد از آن قضیه به حال هنوز سابقه نداشته که اینقدر از دستت عصبانی باشد نان را کنار زدم و از چایم برخواستم. گفتم: از زمان کدام قضیه؟ چهرش را برانداز کردم، متوجه شدم از اینکه دوباره این بحث را از سر گرفته بود پشیمان است. اما او به این مسئله دامن زده بود. جیب عقبم را که در آن پول داشتم باز کردم. اسکنس ها را ورق زدم و ناگهان به یادم آمد که تمام آنها فقط 100 مارکی و 50 مارکی بودند. دوباره پول را داخل جیبم گذاشتم. دکمه جیبم را بستم و دست توی آن جیبه کتم کردم که داخلش پولی که از پیشخان مغازه گلفروشی برداشته بودم قرار داشت. یک اسکناس بیست مارکی، یک سکه دو مارکی و 5 فنیکی در آوردم. دست راست و ولف را گرفتم و باز کردم و پول را کف دستش گذاشتم. گفتم این هم بابت داستان آن موقع. دو مارک و پنج فینیک قیمت ها آجاق برقی هایی بودن که من بلند کرده بودم. پول را به پدرت بده. آنها درست ده تا بودند. آرام گفتم. شش سال از این موضوع میگذرد. اما شما آن را هنوز فراموش نکرده اید. خوشحالم که به من یادآوری کردی. وولف گفت. متاسفم از اینکه به این مسئله اشاره کردم. به هر حال مطرح کردی؟ آن هم الان در اینجا پول را هم که گرفتی آن را به پدرت بده گفت پول را پس بگیر تو نمیتوانی این کار را بکنی به آرامی گفتم چرا نمیتوانم آن زمان کش رفتم و حالا پول چیزی را که بلند کرده بودم پرداخت می کنم اگر حساب دیگری هم با من دارید بگویید او سکوت کرد درم برایش سوخت چون نمیدانست که با آن پول چه باید بکند. پول را در دستش نگاه داشت و دیدم که دست گره کردهش عرق کرده است. روی صورتش هم دانه های عرق دیده می شدند و قیافه ای که به خودش گرفته بود مثل زمانی بود که شاگردها بر سرش فریاد می زدند. یا اینکه کلمه های زشت و زننده تعریف می کردند. گفتم وقتی این قضیه اتفاق افتاد هر دوی ما شانزه ساله بودیم با هم دوره کارآموزی را شروع کرده بودیم. اما حالا تو 23 ساله هستی و هنوز آن را فراموش ای بیا. اگر رنجت میدهد پول را برگردان. می توانم این پول را برای پدرت پست کنم. دستش را دوباره باز کردم. خیس عرق بود و گرم. سکه ها و اسکناس ها را دوباره توی جیب کادم گذاشتم. به آرامی گفتم: حالا اما او سر جایش ایستاد و درست مانند همان موقعی که دوستیم رو شده بود به من نگاه کرد. باورش نشده بود و با صدای نازک و با حرارت جوانانش از من به دفاع برخواسته بود. آن موقع اگرچه هر دو همسن بودیم و حتی در یک ماه به دنیا آمده بودیم، او به نظرم مثل برادر کوچکترم آمده بود که انا رغم بیگناهی به عوض برادر بزرگتر کتک می‌خورد. پدر برسرش کشیده بود و یک سیدی هم زیر گوشش خوابانده بود و من حاضر بودم به او هزار تا نان بدهم تا اینکه مجبور به اعتراف به آن سرقت نباشم اما باید به این سرقت اعتراف کردم. اقرار در حیات تاریک روبه روی کارگاه زیر روشنایی یک لامپ 15 واتی که به سرپیچی زنگ زده آویزان بود و بر اثر وزش باد ماه نوامبر تکان میخورد. صدای کودکانه نازک به اعتراف آمیز ولف وقتی پدرش از من سوال میکرد در نمی آمد و هر دو با هم از حیات به طرف منزل رفتند. در نظر ولف من پسر خیلی خوبی بودم که در قلب بچه گانش جای گرفته بودم و برایش سخت و دردناک بود که بر روی این تصور خط بطلان بکشد. زمانی که با تراموا به خوابگاه کاراموزم باز می گشتم احساس حماقت و بدبختی می کردم. حتی یک ثانیه هم بابت سرقت اجاق برقی دچار از نشده بودم. اجاقی که با نان و سیگار محافظت کرده بودم. به تدریج درباره قیمت فکر می کردم. برای من اهمیتی نداشت که ولف مرا پسر خوبی بداند، بلکه برایم مهم این بود که او مرا به ناحق چنین انسانی تصور نکند. صبح روز بعد پدرش مرا به دفتر کارش احضار کرد ورونیکا را بیرون فرستاده بود و دستهای تیرش با دستپچگی با سیگار برگی ور میرفتند. سپس کاری که هیچ‌وقت انجام نمیداد. کلاه سبز رنگ نمدیش را سر برداشت و گفت من به کاپلاندروکس تلفن زدم و تازه آنو خبردار شدم که مادرت به تازگی فوت شده است ما دیگر هرگز درباره آن نمیخواهیم با هم حرف بزنیم هرگز میشنوی حالا دیگر برا رفتم و وقتی به کارگاه بازگشتم با خودم فکر کردم درباره چه چی چیز حرف نزنیم درباره مرگ مادر و بیشتر از قبل از پدرش متنفر شدم. علت آن را نمیدانستم اما می دانستم که دلیلی داشتم از آن موقع دیگر هرگز درباره این قضیه صحبتی نشده بود هرگز. و من هرگز دیگر چیزی کش نرفتم نه به این دلیل که دزدی را ناحق میدانستم بلکه برایم خیلی سخت بود که به دلیل فوت مادرم یک بار دیگر بخشیده شوم به ولف گفتم حالا دیگر برو برو گفت متاسفم متاسفم من. در چشمانش می که هنوز هم مرا پسر خوبی می داند و گفتم مسئله نیست دیگر فکرش را هم نکن و برو. او حالا مثل مردانی به نظر می رسید که در چهر سالگی چیزی را از دست می دهند که آن را ایدعال خود می دانند. سیمایی اندکی پف کرده و مهربان با کمی از آن حالتی که بر آن یک انسان خوب نامیده می شود. چه باید به پدر بگویم او تو رو فرستاده؟ گفت نه فقط میدانم که او خیلی عصبانی است و سعی میکند که با تو تماس بگیرد تا درباره قرارداد تریتونیا با تو صحبت کند هنوز نمیدانم که چه پیش خواهد آمد؟ جدا نمیدانی گفتم نه جدا نمیدانم. آیا این صحت دارد که دخترهای لباسشویی خانم فلین گفتن که تو دنبال یک دختری هستی؟ گفتم بله، چیزی که آن دخترها میگویند کاملا درست است. من دنبال یک دختر هستم. گفت خدای من نباید تو را تنها گذاشت. آن هم با این همه پول در جیبت. خیلی آهسته گفتم اتفاقا چرا باید تنها گذاشت؟ و خواهش میکنم حالا برو. و با صدایی آهسته تر گفتم و از من نپرس که به پدرت چه باید بگویی. او رفت و دیدم که از جلوی ویترین مغازه گذشت با های آویزان درست مثل یک بکسری که در مبارزه شرکت میکند که هیچ گونه بختی برای پیروزی ندارد. منتظر ماندم تا در پیچ خیابان کرب ماخر ناپدید شود. سپس، جلوی در اغازه ایستادم و سب کردم تا ماشین ویکوبر بهبر به طرف ایستگاه راه آهن را افتد. به اتاق پشتی برگشتم. ایستاد قهوه را تا ته سر کشیدم و نان کوچک سوم را توی جیبم گذاشتم. به ساعت موچیم نگاهی انداختم که در صفحه آن زمان بی صدا و آرام میگذاشت و امیدوار بودم که ساعت پنج و نیم یا شش باشد. اما تازه ساعت چهار بود. از خانم جوانی که پشت پیشخانی ایستاده بود خداحافظی کردم و به طرف ماشینم برگشتم. داخل شکاف بین دو صندلی جلو نوک سفید کاغذی یادداشتی را دیدم که صبح روی آن اسامی هایی را نوشته بودم که باید به دیدن همهشان میرفتم. در ماشین را باز کردم، برگ را بیرون کشیدم و پاره کردم و تکه های آن را درون جوی آب ریختم. دلم میخواست دوباره به آن طرف خیابان بروم و تا اعماق آب فرو بروم اما در یک لحظه از تصور این موضوع هم صورتم سرخ شد به طرف در خانهی که هدویگ در آن زندگی میکرد رفتم و زنگ را زدم دوبار سه بار و یک بار دیگر هم دکمه زنگ را فشار دادم و منتظر صدای خشخش زنگ شدم اما صدایی نیامد و من دوبار دیگر زنگ را فشار دادم اما باز هم صدای خشخش زنگ به گوش نرسید و دوباره همون ترسی که قبل از رفتن به آن طرف سکوی راه آهن پیش هدویک داشتم بر من سایی افکند اما بعد صدای پای رو در راه رو شنیدم که نمیتوانه صدای پای خانم گرولتا باشد قدم شتابان از پله ها به پایین و از راه رو به هدویک در را باز کرد قدش بلندتر از آن بود که به خاطر داشتم تقریبا به بلندی من وقتی ناگهان کاملا نزدیک ایستاده بودیم هردو وحشت کردیم. او یک قدم به عقب گذاشت، ولی در را باز نگاه داشت. و من می دانستم که در چقدر زنگیم بود. چون وقتی ماشین های لباسی خانم فیلینگ را به داخل خانه هم می کردیم می در را باز نگه می داشتیم تا خانم فیلینگ بیاید و پاشنه دیگر در را باز کند. گفتم در یک قلاب دارد. هدویگ گفت کجا؟ گفتم اینجا و از بیرون به قسمت بالای قلاب در کوبیدم و دست چپ و صورتش برای چند لحظه پشت تاریکی در ناپدید شدند. روشنای خیابان بر پیکرش افتاد و او را دقیقا برانداز کردم. میدانستم برایش سخت بود که مانند یک اثر و هنری نگاهش کنند ولی او هم به من زل زد. فقط لبه پاینیاش کمی آبیزان بود. او هم به همان دقتی که نگاهش کردم، نگاه هم کرد. حس کردم که ترسم ریخته است. دوباره آن درد جانکایی را که با آن این سیما در تمام سلول های وجودم تاثیر میگذاشت حس کردم. گفتم، آن وقتها شما موهای بلون داشتید. پرسید، کی آن وقتها؟ هفت سال قبل، مدت کوتاهی قبل از اینکه که من خانه والدینم را ترک کنم. لبخن زنان گفت بله آن وقتا من به لنده و کمخون بودم گفتم من امروز صبح در میان دختران موبور دنبال شما میگشتم، اما شما تمام وقت پشت سر من روی چمدان نشسته بودید گفت مدت زیادی نبود وقتی شما آمدید تازه من نشسته بودم من شما را فورا به جا آوردم اما نمیخواستم سر صحبت را با شما باز کنم او دوباره خنده کرد گفتم: چرا ؟ چون شما قیافهتان عصبانی بود و مثل آدم های بزرگ و مهم به نظر می و من از آدم های مهم وحشت دارم. پرسیدم، چه فکر می کردید؟ گفت: او هیچی؟ فکر کردم پس این فندریش جوان است توی عکسی که پدرتان از شما دارد خیلی جوانتر به نظر می درباره شما حرفهای خوبی نمیزنند. یک نفر برایم تعریف کرد که شما دوستی کرده اید. او قرمز شد و من به وضوح می توانستم ببینم که او دیگر کم خون نبود. صورتش طوری گل انداخت که نگاه کردم به او برایم غیر قابل تحمل می نمود. با صدای آرامی گفتم: "نه، قرمز نشوید. من جدا دوستی کرده بودم." اما شش سال از این موضوع میگذرد و شاید هم این کار را دوباره بکنم. کی برای شما تعریف کرده است؟ گفت برادرم، در زم اصلا آدم بدی هم نیست. گفتم نه، او اصلا آدم بدی نیست. و شما خیال کردید همین چند لحظه قبل که از پیش شما رفتم چیزی برداشتم. گفت بله به این فکر کردم، اما زیاد طول نکشید. پرسیدم مثلا چقدر؟ لفخنزنان گفت <تصفيق> نمیدانم من به مسئله دیگری هم فکر کردم گرستنم بود اما میترسیدم که پایین بیایم. چون میدنستم که شما آنجا منتظر استدید نان کوچکی را که همراه هم بود از جیب کتم بیرون آوردم و او لبخنزنان آن را از من گرفت سری به دو نیم کرد و من میدیدم که انگشتان شست سفید و قوی او داخل خمیر نرم نان فرو میرون انگار بالشی نرم را فشار میدادند یک گاز بنان زد و قبل از اینکه دومین گاز را بزند گفتم شما نمیدانید چه کسی داستان دزدی را برای برادرتان تعریف کرده است خیلی برایتان مهم است بدانید گفتم بله خیلی مهم است همان همانهایی باشند که شما قرمز شد بیش آنها سرقت کرده اید برادرم گفت این را از یک منبعی موسطق می داند. دوم این گاز را به نان زد. چشم از من برداشت و به آرامی گفت. متاسفم از اینکه شما را این گونه بیرون کردم. اما می ترسیدم. وقتی این کار را کردم اصلا به ماجرایی که برادرم برایم تعریف کرده بود فکر نکردم. گفتم. تقریبا آرزو می که ای کاش جدا چیزی بر اما مسئله احمقانه این است که آن عمل چیزی جز یک کار ناشیانه نبود. آن وقت و جوان و بستل بودم. امروز چون کاری را بهتر انجام می دادم. اصلا اثری از ندامت و پشیمانی در شما نیست؟ این را گفت و دوباره یک تکیه نان در دهان گذاشت. گفتم نه اصلا اثری از پشیمانی در من نیست. فقط شکل برمرا شدن آن زشت و زننده بود و من نمی توانستم از خودم دفاع کنم. آنها مرا بخشیدند. می دانید چقدر است که انسان برای آن چیزی که اصلا احساس گناه نکند بخشیده شود گفت: نه نمیدانم اما فکر می کنم سخت و بد است لبخند زنان گفت شما تصادفاً باز هم نان در جیبتان ندارید؟ با این نانها چه می کنید؟ به پرندگان غذا میدهید یا اینکه از قحطی و گرسنگی می ترسید؟ گفتم من همیشه از قهطی وحشت دارم باز هم نان خواهید؟ گفت بله گفتم بیایید برایتان باز نان خورم. گفت آدم میتواند گمان کند که در کویر گیر کرده است هفت ساعت است که قوت نخوردم و چیزی هم ننوشیدم. گفتم بیایید او سکوت کرد و دیگر لبخند نزد آهسته گفت من با شما میآیم فقط به این شرط که به من قول بدهید دیگر با این همه گل به اتاقم نیایید گفتم به شما قول میدهم او پشت در خم شد و قلاب در را با دست بالا کشید و من صدای قلاب را که به دیوار خورد شنیدم گفتم خیلی دور نیست همین سر خیابان است بیایید اما او سر جایش ایستاد با پشتش در را نگاه داشت و منتظر ماند تا من جلو بروم اندکی جلوتر از او راه میرفتم گاهی وقتها برمیگشتم و به پشتم نگاه میکردم تازه متوجه شدم که او کیف دستیش را با خود برداشته بود حالا پشت پیشخان مغاز مردی ایستاده بود که کیک سیب تازهای را با چاقوی بزرگ قطع قطعه قطعه بارید. خمیر قهوهی رنگ پنجرهای شکل که روی سیب سبز رنگ قرار داشت تازه بود مرد با احتیاط چاغو را در کیک فرو می برد تا قسمت پنجری شکل آن خراب نشود. ما ساکت کنار هم جلوی پیش خانی بودیم و به مرد نگاه می کردیم. آهسته به هدویک گفتم اینجا سوپ مرغ و گوشت هم دارند. مرد بدون آن که به ما نگاه کند گفت بله، از این کیک هم می توانید سفارش بدهید. از آن قسمت موهایش که از زیر کلاه نانوایش بیرون زده بود معلوم بود که موهایش پرپشت و سیاه هستند و مرد بوی نان می داد. همانگونه که زنان دهاتی بوی شیر می دهند. گفت نه صورت نمی اما کیک. مرد گفت چقدر؟ او آخرین تکه شیرینی را برید. با یک حرکت سری چاغو را بیرون کشید و لبخن زنان اثرش سرش را دقیق قرار داد. گفت شرط ببندیم با این لبخند آرام در چهره لاغر و تیر رنگش چین و چروک هایی پدیدار شد شرط ببندیم که تمام تکهات دقیقا به یک اندازه و هموز هستند حتی اکثر چاغو را کنار گذاشت حداکثر اکثر با دو یا سه گرم تفاوت این هم که قابل چشپوشی است شرط ببندیم من لبخند زنان گفتم نه من شرط نمیبندم. من این شرط را می بازم. کیک شبیه پنجره های به شکل گل زینتی کلیساهای خیلی بزرگ بود. مرد گفت: اما مطمئن هستم مطمئنم شما این شرط را خواهید باخت. چقدر از کیک می خواهید؟ به هدویک نگاهی پرسشگرانه کردم. او لبخند زد و گفت: یک تکه خیلی کم است و دو تکه خیلی زیاد. مرد گفت: بنابراین یکی و نصفی. هدویک پرسید، پس می شود یکی و نصفی هم سفارش داد. او گفت، بله مسلم است. کارد را برداشت و یکی از تکه های کیک را درست از وسط نصف کرد. گفتم، بنابراین برای هر نفر یکی و نصفی کیک با قهوه. فنجان هنوز روی میزی قرار داشتند که من با ولف سر آن نشسته بودیم و روی باشقاب من هنوز خورده ننهای کوچک بود. هدویک روی صندلی که ولف نشسته بود نشست من سیگارها را از کیفم درآوردم و به او تعارف کردم او گفت: نه متشکرم شاید بعدا ضمن اینکه می نشستم گفتم یک چیزی را باید هنوز از شما سوار کنم چیزی که همیشه دوست داشتم از پدرتان بپرسم اما به خاطر بازدلیم هیچ وقت نپرسیدم. گفت: چه چیز را می خواهید بدنید گفتم علت این که فامیل شما مولر است و نه مولر به معنی آسیابان چیست؟ گفت، آخ، این یک داستان احمقان است و من خودم اکثرا از این موضوع دلخور شدم. گفتم برای چی؟ پدر بزرگم هنوز فامیلیش مولر به معنی آسیابان بود. او خیلی من بود و اسمش از نظر او خیلی معمولی بود. خیلی پول خرج کرد تا دو نقطه کوچک از روی یو برداشته شوند. من از دست او عصبانی هستم. گفتم چرا؟ چون ترجیح میدادم اسمم مولر به معنای آسیابان بود ولی آن پولی را که صرف برداشتن دو نقطه بیگناه شد داشته باشم. آرزو میکردم ای کاش آن را داشتم که دیگر مجبور نشوم معلم شوم. پرسیدم دوست ندارید معلم شوید؟ گفت چندان هم بیمیل نیستم. اما عاشق سینه‌چاک این شغل هم نیستم اما پدر میگوید من باید معلم بشم تا بتوانم خرج خودم را در و امرارم معاش کنم به آهستگی گفتم اگر بخواهید من میتوانم خرج شما را بدهم او قرمز شد و من خوشحال بودم از اینکه سرانجام این موضوع را به این شکل توانسته بودم بگویم همچنین خوشحال شدم که مرد با قهوه وارد شد او قوری را روی میز گذاشت. ظرفای کثیف را جمع کرد و گفت آیا میخواهید روی کیکتان خامه بدهید؟ گفتم بله لطفاً. او رفت و هدویق قهوه را ریخت. او هنوز سرخ بود. من نگاه هم را از او برگرفتم و به تابلویی که به دیوار آویزان بود نظر انداختم. تصویری از مجسمه مرمری زنی بود که من اغلب از کنار این مجسمه میگذاشتم. و نمیدانستم که مربوط به کیست. الان خوشحال بودم از اینکه زیر عکس می‌خواندم مجسمه ی شهبانو اگستا. و میدانستم که این زن کیست. مرد کیک را هم آورد. داخل فنجانم شیر ریختم و شروع به هم زدن کردم. یک تکه از کیک را با قاشقم کندم و خوشحال بودم از اینکه هدریک هم شروع به خوردن کرد. سیمایش دیگر سرخ نبود. و بدون اینکه چشم از بشخابش بردارد گفت یک تغذیه عجیب و گل گلهای زیاد و یک نانه کوچک میان در و خوردم گفتم بعدن هم که که و قهوه اما شب هم چیزی که اگر مادرم بود آن را قضای درسته حسابی می نامید گفت آره مادر من هم می گفت که باید هر روز یک چیز درسته حسابی بخورم گفتم، شاید حول و ساعت هفت. پرسید، امروز؟ و من گفتم، بله. او گفت، نه امشب نمی باید به دیدار یکی از اقوام پدرم بروم. او در این اطراف زندگی می کند و از مدت ها قبل از آمدن من خوشحال است. پرسیدم، با رقبت به آنجا می روید؟ گفت، نه. او از آن جمعه زن که در نظر اول متوجه می شود که آدم آخرین باری که پرده ها را شسته کعی بوده است و بدتر از آن اینکه که هرچه میگوید همیشه کاملا صحیح است. اگر او ما را با هم ببیند خواهد گفت او میخواهد خواهد تو را از راه بدر کند. گفتم کاملا صحیح است. من میخواهم شما را اخبار کنم. هدویگ گفت می دانم. نه من چندان هم با رغبت پیش او نمیروم گفتم پیش او نروید اگر می توانستم امشب شما را دوباره ببینم خیلی خوب میشد آدم لازم نیست به دیدن کسانی برود که از آنها خوشش نمی آید گفت خیلی خوب من نمی نمیروم اما اگر پیش او نروم او دنبال من خواهد آمد او ماشین دارد و اهل عمل است پدرم همیشه میگوید که زن مسممی است گفتم من از آدم های مسمم متنفر هستم. او گفت، منم همینطور. او باقی کیک را خورد و با قاشق حامه هایی را که از روی کیک داخل بشخاب ریخته بود جمع کرد. گفتم، نمی توانم تصمیم بگیرم و به جایی که می بایستی ساعت شش می رفتم بروم. دختری را می خواهم آنجا ببینم که یک موقع می خواستم با او ازدواج کنم. دارم به او بگویم که نمی خواهم با او ازدواج کنم. او قوری قهوه را برداشت که دوباره قهوه بریزد در این لحظه مکسی کرد و گفت: آیا به من بستگی دارد که شما امروز به او این مطلب را بگویید یا نه؟ گفتم: نه فقط به خود من بستگی دارد. در هر حال باید به او بگویم. پس بروید و به او بگویید. این دختر کیست؟ گفتم: او همان دختری است که من از پدرش چیزی بلند کردهام. و احتمالا همان دختری که به همان شخصی که این داستان را برای برادر شما تعریف کرده گفته بود. گفت آه، این مسئله کار شما را راحت و آسان می کند. گفتم خیلی هم راحت به همان راحتی که آدم آبانمان روزنامه را قطع می کند که در آن صورت آدم دلش نه برای روزنامه بلکه برای روزنامه فروش می سوزد که یک انعام ماهانه را از دست می دهد. گفت، با آنجا بروید و من هم پیش فامیل پدرم نخواهم رفت. چه موقع باید بروید؟ گفتم، حدود ساعت شش، اما ساعت هنوز پنج هم نشده است. هدویگ گفت، تنهایم بگذارید، یک مغازه لوازم تحریر فروشی پیدا کنید و برایم یک کارت تبریک بخرید. به خانوادم قول دادم که هر روز برایشان بنویسم. پرسیدم، یک قهوه دیگر میل دارید؟ گفت، نه اما یک سیگار به من بدهید. پاکت سیگار را جلویش گرفتم. او هم یک سیگار برداشت. سیگارش را روشن کردم و موقعی که در مغازه ایستاده بودم و پول کیک و قهوه را حساب می کردم دیدم که هنوز آنجا نشسته است و سیگار می کشد. دیدم که آنچنان به سیگارش پک نمی زند و دود را تو نمی دهد و فقط در هوا پخش می کند. و وقتی یک بار دیگر به اتاق برگشتم به من نگاهی کرد و گفت بروید دیگر و من دوباره رفتم و فقط دیدم که کیفش را باز کرد. آستری کیفش به سبزی پالتویش بود.